ریج آسیه. الرحمن الرحیم. من الله العزیز الحکیم این فی السماوات والأرض لآیات للمؤمنین به الله که بخشاینده و با رحمت است سبحان الله می این کتاب نازل شده از سوی خداوند قدرتمند و حکیم است در آسمان ها و زمین نشانه هایی برای اهل ایمان وجود دارد همچنین در آفرینش شما و جنبندگانی که در سراسر زمین پراکنده هند نشانه هایی برای اهل یقین وجود دارد و نیز در اختلاف شب و روز و آن نعمتی را که خدا از آسمان نازل کرده تا به واسطه آن زمین مرده را حیات بخشد و نیز در وزش بادها نشانهای برای خردمندان وجود دارد اینها همه آیات و نشانهای خداست که بر تو به حق تلاوت میکنی پس بعد از خدا و آیاتش به کدام سخن میخواهند ایمان بیاورند پس وای بر هر دروغگوی گناهکار که پیوسته آیاتی را که برایش تلاوت می شود می شنود، اما از روی تکبر اصرار بر مخالفت دارد گویی اصلا آیات را نشنیده است این چون این کسی را به عذابی دردناک بشارده هرگاه به بعضی از آیات ما آگاهی یابند آن را به تمسخر می گیرد بدانید برای آنها عذابی خار کننده است پشت سر آنها جهنم است و دستاوردشان هیچ به دردشان نخورد و کسانی را که به جای خدا به عنوان تکیگاه برگزیدند هیچ نفعی به آنها نرساند و برای آنها عذابی بزرگ است این قرآن هدایت است و کسانی که آیات پروردگارشان را انکار می‌کنند، کنند عذابی سخت و دردناک دارند این خداست که دریا را در اختیار شما گذاشت تا کشتی ها به فرمان او جریان یابند و شما از فضل و کرمش روزی خود را جستجو کنید امید آنکه که شوق گذار نعمات الهی گردید و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خود در اختیار شما گذاشت بدانید که در تمام اینها نشانه هایی برای اهل تفکر وجود دارد به اهل ایمان بگو از آنهایی که به روزهای الهی امید و اعتمادی ندارند درگذرند تا خود خدا آن مردم را نسبت به دستاوردشان جزا دهد. من عمل صالحا فلنفسه ومن و من علیها ثم ایلی ربكم ترجعون هر کس عمل کرد خوب و مفیدی داشته باشد به سود خود اوست و هر کس عمل کرد بدی داشته باشد به زیان اوست. سرانجام همه شما به سوی پروردگارتان باز می گردید. ما به بنی اسرائیل کتاب آسمانی و قدرت و نبوت عطا کردیم و از نعمتهای پاکیزه روزیشان دادیم و آنها را بر جهانیان برتری بخشیدیم. و دلائل روشنی از امر خدا را عطایشان کردیم و آنها در آن اختلاف نکردند مگر آگاهانه و از روی ظلم و ستم بدان که پروردگارت در روز قیامت میان آنها در مورد اختلافشان داوری خواهد کرد آنگاه تو را بر راه و آقین حقی قرار دادی پس از آن تبعیت کن و از هواهای نفسانی ناآگاهان پیروی من ما آنها هیچ نفعی برای تو در برابر خداوند بزرگ نخواهند داشت بدان که ظالمان پشتیبان یکدیگرند و خداوند سرپرست و تکیگاه حرمد نگاهداران حریم الهی است این قرآن ماغه بسیرت مردم است و برای اهل یقین سراسر هدایت و رحمت است. آیا کسانی که عمل کرده بدی دارند میپندارند ما آنها را چون اهل ایمان و عمل صالح قلم داد میکنیم. مگر نوع زندگی و مرگشان یکسان است. حقیقتا چه بد حکم میکنند؟ خداوند آسمان و زمین را به حق آفرید تا به هر کس نسبت به دستاوردهش جزا داده شود حالان که به هیچ کس ظلم نخواهد شد آیا آن کس که هوای نفس خیش را خدای خود قرار داده دیده ای؟ خدا آگاهانه گمراهش کرد و قوای ادراک او چون گوش و قلب ویرا از درک حقایق آجز نمود و بر دیدگانش پرده افکند؟ تا درک حقایق نتواند پس چه کسی به لیل از خدا میتواند او را هدایت کند چرا پهند نمیگیرید و گفتند زندگی ما فقط همین زندگی دنیاست. است ادهی می و ادهی به دنیا میآیی و این روزگار است که ما را از بین میبرد آنها از حقایق آگاهی ندارند و فقط گمان میکنند هنگامی که آیات رو گوشنگرمان بر آنها تلاوت می شود حجتشان جزه نیست که میگویند اگر راست میگویید پدر من را به دنیا برگردانید. بگو این خداست که شما را زنده می کند سپس می, می راند و سرانجام همه شما را در روز قیامت جمع خواهد کرد. در آن هیچ چکی نیست هرچند اکثر مردم درک نمی کنند. فرمانربایی آسمان ها و زمین، از آن خداست و آن روز که قیامت بر پا شود اهل باطل زیان خواهند دید و دید كتابها تجزون که هر امتی به زانو در آمده است هر امتی را برای رؤیت نامه اعمالش فرا بخوانند امروز به خاطر عملکردتان جزا خواهید دید این از کتاب ما که به حق علیه شما سخن می‌گوید آری ما تمامی عملکردتان را نوشته‌ایم اما کسانی که به حقایق ایمان دارند و عملکردشان خوب و شایسته است پروردگارشان آنها را در رحمت خویش وارد می کند این همان پیروزی واقعی است و اما کسانی که نسبت به حقایق کافر شدند و آنها گویند آیا آیات نجات ما بر شما خوانده نمی شود و شما هم تکبر می کردید و مردمی مجرم شدید و انگامی که گفته می شد خدا حق است و در وجود قیامت چکی نیست شما می گفتید ما نمی دانیم قیامت چیست جز گمانی نمیبریم و به یقین نرسیده ایم اكنون بدیهای عملکردشان بر آنها آشکار شده و حقایقی را که به تمسخر میگرفتند ما اصرهشان نموده است گفته شود امروز ما شما را فراموش می کنیم همانطور که شما دیدار چنین روزی را فراموش کردید جایگاه شما آتش است و هیچ یاوری نخواهید داشت این به آن خاطر است که آیات الهی را به تمسخر می گرفتید و زندگی چند روزه دنیا فریبتان داد. پس امروز از آتش خارج نمیشوید و هیچ عذری از شما پذیرفته نیست. ستایش فقط مخصوص خداوندی است که پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین است. پروردگار همه جهانیان است. بزرگواری و عظمت در آسمانها و زمین بر اوست زیرا او قدرتمند و حکیم است فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين و له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم بروست گفت خدای من بلند مرتبه و عظیم رسول الهی پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم